اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعليها وبنيها واستر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك اللهم صل على محمد وأول محمد وعجل فرجهم بسم الله الرحمن الرحيم نبی مکرم اسلام فرمودند تداوا و فانا الذی ان انزل الداء انزل الدواء طب المعصومین صفحه 163 تداوا این واژه تداوا 53 بار در روایات اومده سیدی جامع احادیث نور ثوانیم فإِنَّ الَّذِي خودتان را مداوا کنید تحقیقا اون شخصی که درد و بیماری را نازل کرده دارو هم در طبیعت قرار داده اونو کشفش کنید و استفاده صحیح کنید این روایت در بحار علامه مجلسی چاپ اسلامی تهران جلد شست دو صفحه هفتاد جلد 59 و نه چاپ بیروتی جدید صفحه هفتاد ترجمه کتاب وو و صفحه سی و نوزده صفحاتش یاد کنید چاپونه بنویسید ترجمه ضوئ شهاب صفحه 310 دعوات راوانی از علمای بزرگوار شیعه صحن حضرت معصومه دفن قم صفحه 108 حدیث 409 نهج الفصاحة کلمات قصار رسول الله صلی الله علیه و آله علی و سلم نه جل فصاحه صفحه 382 حدیث 1137 مستدرک محدث نوری جلد 16 صفحه 440 حدیث 2491 روایت بعدی عن نبی صلى الله عليه و علیه و سلم ما انزل الله نندا ان الا انزل له شفاءا ان خدا هیچ بیماری و نازل نکرده مگر اینکه شفا برای اون بیماری هم نازل کرده یعنی درمان آن بیماری به گونه ای که برگشت ناپذیر باشد احتمال برگشت بیماری هم نباشد روایت قبلی بحث مداوا و بحث علاج بود ولی احتمال برگشت بیماری هست مثل بیماری دیابت مثل بیماری فشار خون مثل بیماری چربی خون مثل دفع پروتئین در ادرار مثل تورم پروستاد مثل ناراحتی دانه رحم این همه از بیماری های برگشت پذیره یعنی اگر بیمار درمان هم شد بعضی مسائل رعایت نکنه دوباره بیماری عاد میکنه صورت شد مومنان؟ اما این روایت بعدی که میخونیم شفاعنه یعنی درمان بیماری به گونه ای که برگشت نپذیر دیگه برگشت بیماری نیست حتی احتمال برگشت هم نیست این بحث شفا هست حالا گاهی با ذک درمانی مومنان مثل هفت بار سوره حمد خوندن برمریض مثلا بحث شفاه و چیزهای دیگه که مؤمن هست تو بحث شفا درمانی حتی در خوراکیه روایت این روایت هم سنداش روایت هشت سنداش یکی بهار جلد پنجه صفحه شست حدیث بیست و یک حدیث بیست دعوات راوندی صفحه 181 حدیث 499 نهج الفصاحه صفحه 691 حدیث 2594 روایت بعدی عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم ما خلق الله داءا الا وخلق له دواء الا السم خدا هیچ بیماری رو خلق نکرده مگر اینکه برای اون بیماری دارو هم خلق کرد مگر مرگ حتمی اجل حتمی سام یعنی اجل حتمی مرگ حتمی نه اجل معلق خو خب اونجا هیچ دارو نداره لا یستقد مسعتا و ولا یستخر وقتی عجل حتمی بیاد مرگ حتمی بیاد دیگه راه برگشت نیست آدم از دار دنیا میره تو داره برزخ و سپس داره قیامت بازگشتی نیست هر بگه یا لیتنی قدمت للحیاته تو دنیا می‌خواستی خوب عمل کنی راه برگشت نیست مگر بعضی مسائل خاص بحث رجعت به اذن خداوند بهترین افراد به دنیا بن می‌گردند از تو برزخ و بدترین افرادم افراد هم بقیه مسائلش دیگه لازم به نیست بعد از ظهور امام زمان همه مشاهده خواهند کرد از قبه شد حالا اینجا مؤمن عن النبي صلی الله علیه و آله و سلم ما خلق الله دا ان الا و خلق له دوائن الاستامن حالا مثلا یکی از بیماریات چیه؟ جهل و قفلت که شخص از روی بیعقلی جهل در مقابل عقلها ها قروایات شیه ها کتاب العقل و الجهل تو کافی به بحار علامه مجلسی حالا شخص جاهلانه یعنی بیعقلانه و یا قافلانه مثلا اگر مرد یا پسره چیزی میخوره این ممیز بالغ که بذرشه. مثلا گشنیز اگر پسر یا مرد گشنیز بخوره، زیاده روی کنه در خوردن سبزیه گشنیز. یا رازیانه بخوره. خب اینجا هم اسفررماش ضعیف میشه، هم تعداد سالمش کم میشه. هم دوچار عقیمی در طول زمان میشه حال اگر قافلانه و جاهلانه کافور بخوره و ادامه بده باز همین بدبختی ها به سرش میان درست شد مؤمنان حالا برای اینکه که این حالت ها پیش نیاد اول از تو قفلت و جهل درش میاریم، بعد میگیم حالا اسپرما رو تقریت کن میخوایم دارو بده. حالا میگیم اسپرماتو تقویت کن یه سری مسائل قبلا گفتن حالا یه سری مسائل اوست مردا مثلا میگیم در اول و آخر قضا پودر آویشن سعتر مخلوط با ملح پودر نمک سنگ در اول و آخر قضا بخور نکه قاشق چای خوری یا مثلا اسران جذر یعنی زردک، یعنی هویج زرد، هویج رسمی اصلانه یکی دوتا یا یک لیوان آب زردک بخوا تقویت قوه باه میشه و تقویت نعوز میشه تو مسائل خانوادگی که ازدواج قانونی و شرعی نموده مشکلاتی براشون در سلام علیکی خصوصی پیش نیاد یعنیم که فهمهای امام صادق علیه السلام تو بحث جزر و تو بحث سعتره که ملح و سعتر یازده فایده داره یکی تقویت قوی باه در بحث جزرم الجزر رو یوسخ خنل کلی و بعدم یجل البصر و یقی مذکر حالا اینا دیگه معلوم توضیح واضحاتم حالا نظر دارو مثلا افشوره کاکوتی افشوره ککوتی این هم ضد نفخه ضد نفخ هم رفع تنگی نفس میکنه در آسم خفیف و متوسط خوبه یک دارو برای درمانه هم اگر ممیز و بالغی که از مردان و پسران ازدواج قانونی و شرعی کرده اما بیماری خستگی جنسی دارد افزایش میل جنسی به امیده نمیگذاره دعوام مرافعه کنن و سر از دادگاه خانواده در بیارن مقدار مصرف افشاره کاکوتی مقدار مصرفش دو الا پنج قطره بعد از غذا در 24 ساعت سه بار بخوره یعنی هر هشت ساعت یک بار یک بار دیگه مؤمنا این شخص هرمون مردانه تستوسترونش کمه یعنی دچار ناتوانی جنسیه به همچنین بیماری خستگی جنسی دارد حالا اینجا قرص گیاهی جمتیانا قرص گیاهی جنتیانا هر دوتا رو درمان میکنه همچنین قرص گیاهی تادا تادا لافیل تادا لافیل با نام تجاری تادا گر, تادا گر خب این هم دو قرص گیاهی سخته کشور جمهوری اسلامی ایران و ساخت کشور خارج در درمان ناتوانی جنسی و همچنین خستگی جنسی بعضی قرصهای گیاهی هست که آمریکایی و از هشت گیاه تشکیل شده مثل قرص گیاهی اس ایکس که از هشت گیاه درست شده در درمان ناتوانی جنسی و اگر مردی که ازدواج قانونی و شرعی کرده مشکل کمبود هورمون مردانه تستستران داره از اون طرف ناتوانی جنسی هم که داشته حالا میتونیم قرص اس ایکس امریکایی رو تجویز کنیم هر دوتاش خوب میشه یک بار دیگه این مرد و پسری که ازدواج قانونی و شرعی کرده اگر مزکر مشکل انتشاری داشت مشکل نعوز داشت و از اون بر افزایش اسپرم هم میخواست چون در سانتیمتر مکعب تعداد اسپرماش زیر صد میلیونه اینجا قرص گیاهی آفرودیت سخت ایران که از زعفران و اوسانس زعفرانه اینه براش تجویز میکنیم بگیم شبها قبل از خواب یک عدد بخور یک بار دیگه کسی هست که هم بیماری قندخون داره هم فشار خون داره هم مشکل جنسی داره ازدواج قانونی شرعی هم کرده هم دیابت داره هم فشار خون داره هم مشکل جنسی اینجا قرص گیاهی کاکره کاکره این هم کاهش دهنده قنده هم کاهش دهنده فشار فشالخونه هم تقویت قوای جنسیش میکنه خودت هم میتونی بخوری مثلا اگر کسی سیر مع معحبت سودا اگر کسی سیر با سیاه دونه این دوتا رو با هم بخوره و بجوه. اگر سیر و زیره سیاه با هم دیگه خورده شود و جویده شود هم قند خون هم فشار خون میاد پایین و هم تقویت قواه جنسی میکنه در این بیماران خب یک کم مثال زنیم تکمیل دحثای قبل اگر مثلا خانمی باشه که قوه باه ضعیفه و خستگی جنسی داره ازدواج قانونی و شرعی هم کرده اما قوه باهش ضعیفه. اونجا اون حضرت خانومه میتونه چای رازیانه اصرانه بخوره یعنی یه استقار توش یه قاشق چای خوری رازیانه بریزه آب جوش بریزه هم بزنه پنگ دقیقه دقیقه صحب کنه بعد همه رو با هم دیگه بخوره و بجره اینجا چند خوبی داره در این حضرت خانومی که ازدواج قانونی رو شرعی کرده یک تقویت قوه جنسیش میشه پس بیماری خستگی جنسیش خوب میشه دومی که اگر عادت ماهیانش رگلش حیزش ساعت بیولوژیکش نامنظم باشه قاعدگیاش منظم میشه ثومی که اگر اولاد دار باشه و بچه شیرخار داشته باشه شیر افضا هست قدرت شیری پستان مادر فعال میشه درستون موامنا؟ اینم مال حضرت خانم اگه همچین مشکلی داشتن روایت بعدی خب این روایت نهم رو سنداش نگفتم ما خلق الله داعن الا و خلق له دوائن الا السامه تو کتاب از طب النبی صلی الله علیه و آله و سلم ولی ابو العباس المستقفری کتاب های مرجعه بحار علامه مجلسیه صفحه 19 همچنین بهار طبع بیروتی جدید جلد 59 صفحه 72 حدیث 27 بنابر این دو سند ما خلق الله داعن الا و خلق له دوائن جا و خلقه داره بعد از الا اما پنج سند دیگر مثل تببال اعمی علامه شبر سفره پنج و چهار کتاب دیگر بعد از الا و جعله لفظ جعله داره به جای خلقه یک مقدار از این معنا فرق میکنه جعله و خلق یه بار از عدم به وجوده بحث موجودیت شیء اونجا خلقه مطرحه خالق و کل شیعه الله جل جلاله یه بار نه بحث استفاده از منابع طبیعی و داروهای طبیعی یه میشه وجه علیه درست شد روایت بعدی عن النبی صل الله عليه علیه و علیه و سلم ف انزل الله داران الا انزل معه دواء اینجا چابخونه اشتباه کرده الفلام گذاشته بنابر همه نسخه که موجوده الفلام نداره الا انزل معه معه دواء الا انزل معه دوائن هم بنابرای نسخه مستدرک هم نسخه بهار، هم نسخه سرائر هم نسخه دعایم الاسلام حالا آدرسه شمیدن بنابر همه نسخ اینجا دوائنه الفلام نداره حاجه او سه چی؟ اینقدر متر رو خشخاش میذاری؟ به خاطر اینکه اگر الفلام داشته باشه معرفه میشه یه مورده میگیره یعنی این بیماری خاص این داروی داره و حانی که نه همان گونه که مبدأ یک بیماری و منشأش ممکن اسباب و علل گوناگون داشته باشه درمان یک بیماری هم میتونیم با اسباب مختلف درمان کنیم لازم نیست که اکتفا به یک دارو کنیم مثلا وقتی نکره باشه عام اطلاقیه عموم علل بدله اسم جنس افرادیه کلی مشککه مشترک معنویه حالا ها کسی تو اگر تو صرف و نحو عدبیات و معانی بیانی اسم جنس افرادی اگر تو منطق هستی مومنا چه سوری چه عملی چه مبانی منطقی استقرار خدا رحمت خونه آیت الله شهید صدر اینجا کلی مشکک نکره زیاده و نقصان داره شدت و زرد اگر تو فلسفه هستی مومنا مشترک معنویه مثل نور مثل قدرت مثل نیرو حالا اینجا هم بحث چی؟ دا این درد با مثلا این بیماری با درد یا بدون درد، دردش مقتعیه یا استمراریه آیا به صورت مزمنه یا غیر مزمن همه شقوقش هم میگیره اما اگر در علم اصول هستی که پایه فقه تو بحث فقه اصولی اینجا کلی به نوع عام بدلیه عموم علل بدن میشه عام اطلاقی این نکره عام اطلاقی درست شد مومنان چقدر معناش تغییر میکنه تو بحث استنباد که می‌فرمایید پس ما اینجا دواا فنا بر همه نسخ عن النبي صلی الله علیه و آله و سلم تداوا فما انزل الله داء ان الا انزل معه دواء الف خاموش برد الا سان ای الموت اما تو روایات فنا بر نسخه مستدرک بهار به جای ای تفسیری یعنی آورده یعنی الموت بازم اینا یک کم معنیش فرق کرد چون اگر عدات تفسیر بذاری ها این دلیل حاکم و دلیل محکوم مفسر میشه اما اگر یعنی بذاری ها بحث قید توضیحی میشه توضیح با تفسیر فرق می‌کنه فإنه فا لا دواء له اگر اجل حتمی بیاد دیگه دارو نداره از قبل باید داروش و تدارک میکردی و اون زاد و توشه سعیه عمل صالح با نیت خالصه این به درد قبر و قیامت میکنه. عمل صالح با نیت خالص یعنی عمل خوب سنجیده خالصان لوجه کریم خب جلب رضایت معصوم باید کرد تا جلب رضایت خدا محقق شود زیرا الله منتظر در رضایت خدا گره خورده پیچیده شده در رضایت چهار معصوم پس باید جلب رضایت رسول الله امیر علی علی السلام حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها حضرت امام حسن حضرت امام حسین حضرت امام سجاد امام باقر امام صادق امام کاون امام رضا، امام جواد، امام هادی، امام حسن عسکری، امام زمان صاحب العصر و زمان حی منتبر باید جلب رضای چاد معصوم بکنی که واسطهای فیض الهی تا جلب رضای خدا برای تو محقق شود. بدون جلب رضای واسطه فیض الهی، جلب رضای خدا ممکن نیست چون صراط مستقیم یگان راه برای رسیدن به خدا و عمل بر طبق وزیفه سراط محمد و آل اللهم آه. آه. آه. محمد علی محمد آل محمد فرجام. حالا مؤمنون این روایت ده هم سنداش بحار علامه مجلسی جلد پنجه صفحه شست و و صفحه هفته دو حدیث بیست کتاب سرائر ابن ادریس حلی جلد 3 صفحه 138 دعایم الاسلام جلد 2 صفحه 143 حدیث 499 مستدرک محدث نوری جلد 16 صفحه 436 حدیث 2475 حالا مؤمن یکی از بیماری ها بیماری سندروم رینو سندروم رینو رینو به نیسیم بابشه نخونیم حرف استثنائیه حروف والی سندروم رینو علائم این بیماری نه تا علامت داره یک ابتدائم نوک انگشتان دست و پا سیاه می شود توعم با درد شدید دوم سپس در اوج بیماری در تمام بدن درد شدید استخوان دارد سوم بی اشتهایی دارد بیماری که بیماری سندروم رینا داره بی اشتهاست چهارم بی و بی در جهان دائما احساس میکن پنجم، کم کم لکه های سیاه به وسعت کف دست در چهار بخش بدنش ظاهر میشه شیشم فراوان به طور تکراری متناوب فراوان دوچاره گوش درد میشه گوش درد هفتم دوچاره یبوست شده هشتم تکرر ادرار شدید دارد نهم آفت دهان دارد آفت دهان داره حالا این سندرم رینه رو چگونه درمان کنی؟ این نهتو شو وقتی درمان کنی این بیماری رو به بهبودی میرود یک جواب یک هفت عدد گلنار وحشی با یک لیوان آب انار شیرین بخورد یا با یک قاشق پلو رو به انار شیرین بخورد برای یک بار در سال ولی هر روز یک مرتبه یک لیوان آب انار شیرین یا یک قاشق پلوخوری رو به انار شیرین بخوره اشکال نداره. جواب دومیه. روغن بنفشه طبی هم بخوره هم محل استخونها رو ماساژ بده. جواب سه به همراه نهار و شام کاهو بخوره بدون سس بدون سس جواب چهارم با محلول آب سرکه مزمزه و قرقره کنید و بیرون بریزید سپس یک استکان محلول آب سرکه یعنی یک استکان آب با یک قاشق چایخوری سرکه سیب و یا سرکه انگور عسکری مخلوط و محلول کنه و بخوره اشکال نداره جواب پنجمی شس عدد ویتامین B6 عدد ویتامین B6 روزی یک عدد یا هر روز یک عدد لیمو شیرین با شام و 14 عدد مغز بادام شیرین درختی در بین روز جواب هفتمی مربای انجیر با شیره توت شربت انجیر با شیره توت پودر گلبرگ گل محمدی با شیره توت گلاب طبیعی با شیره توت چای کوهی یا گلاب با شیره انگور یا انگور با حسه آن جویده بشه یا خوردن میوه گلابی حالا هر کدوم اینا بود چون یکی از بیماری های این مریض چی بود؟ عوارضش یوبوسط شدید بود حالا هر کدوم از اینا که در دسترسش بود میتونه مصرف در جواب هشتم که تکرر ادرار مریض داشت میتونه خولنجان که تو روایات اومده یا قولنجان یا خسرو دارو به مقدار یک عدس زیر زبونش نگه داره هم تکرر ادرارش خوب میشه اگر بچه هم باشه شب ادراری کودکان خوب میشه زیر زبونش نگه تا حل بشه قرص بده اگر سن بالا هم باشه هم تکرر ادرارش خوب میشه هم مشکل نووزش خوب میشه که سوپر شول بودا، حالا خوب میشه دیگه یاتقان نمیزنه بوبانی خورد نمیکنه به سلام مکانیکا پس شما فرمودین مؤمنه جواب نهم اونجا البته از جوشونده پوست سخت چوبیه گردو هم میتونن استفاده کنن که دور مغز گردوه در تکرر ادرار فقط سه با در سه شب بخورم اما مال خولنجان همجور ادامه بده تا درمان کامل بشه جواب نهم که آفت دهان دوش اگر سرد مزاج جویدن گردو با مغزش جویدن مغز گردو با پنیر جویدن مغز گردو با پنیر به جای تو دهان بگردونه بیزه بیرون این آفت سرد مزاجان خوب میشه آفت دهان سرد مزاجان خوب میشه اگر گرمزاج بود اینجا انار گس یا انار میخوش یا آب اینها یا رب اینها رو تو دهن بجوه یا بگردونه بر بیزه بیرون آفت دهان در گرمزاجان هم چی میشه؟ خوب میشه پس اگر بیماری سندروم رینوداش که این نهت علامت رو داره دونه دونه این علامت ها رو با این گیاهان دارویی چیز کار خوب میکنیم این سندروم ریناش کم کم رو به بهبودی میره ماشاءالله همه تون شیعیان استعشاری محبین اهل بیت مؤمنین و مومنات همه شون ماشاءالله اهل سخاوت و جود و کرمن و اینه از چهاره معصوم یاد گرفتم خواستم فرمایش امیر المومنین علی علیه السلامو رو تذکر بدم مستدرک محدث نوری جلد 16 صفحه 24 امیر المومنی علی علیه السلام فرمودند: قوت الاجساد قوت الاجساد الطعام و قوت الارواح الاطعام خدا سره هم بخوند قوت الاجساد الطعام و قوت الارواح الاطعام خوراک بدن ها قضای بهداشتی سالم حلال فیب فاهره و خوراک جانهای انسانی روحهای انسانی چیه؟ اطعام کردنه چنین خوراک خوبی رو قضا بدی حالا به پده مادرت به خوار به فامیلات به همسایگانت به قوم خیشات عشیره همشهری هممحلی آیتام فقرا، مساکین چنین غذایی نه آتش نه مونده نه اونایی که چپک داره نه غذایی که خوب سالم بهداشتی ریسم و قضی و غذای کامل بااهرم هست حلالم هست طیبم هست حالا اینجوری میخوری اینطوری هم اطعام کن. اینجوری فضلا بخشش کن لا نوری و منکم جزا ان ولا تشکر زبانی هم نمیخواد پاداش در مقابل هم نمیخواد تنشتن آلاب و بقیه معصومین همه هم جور بودن شیعیان اسناعشری هم همین جور هم یادگاری گفتم تذکر به خاطر این که و بیماری به خودت و دیگران سرایت نکنه تورایات یه دارین میگه غذای شخص با سخاوت رو بخور درش شفا هست اما غذای شخص بخیل رو نخور چون درد و بیماری میاره چون چش نداره ببینی که میخوری همیشه دائما نفری میکنه که گلوت پایین نره دست از غذا قضا بکش غذا میگه غذای شخص بخیل رو نخور درد و بیماری میاره اما غذای شخص استخاوتمند رو بخور مثل قضای چهارده محصول مثل قضای شیعیان محمد و عالم محمد مؤمنین و مومنات اللهم صلیح علی محمد و عالم محمد و حجل در بهار علامه مجلسی یکم مثال بدنی زدم مومنان حالا یکم مثال روانی و اخلاقی که از تو اخلاق سیئه در برم تو اخلاق حسنه از روان نامتعادل یا آشفتگی های ذهنی در برم تو تعادل روانی با وجود نفس مطمئنه چه دنیا بکامت باشه چه نباشه چه قرب و شرق بر باشه چه نباشه همیشه آروم دارای نفس مطمئنه امیر علی علی السلام فرمودند در بهار جلد 75 صفحه 9 من توافع قلبه لله هر کس قلبش برای خدا تواضع داشته باشد لم یسأم لم بدنه من طاعت الله بدنش از طاعت خدا خسته نمیشه یعنی این واجبه انجام بده این واجب انجام بده یا این واجبه آکد رو انجام بده این فریضه رو این فریضه رو بدنش خسته نمیشه چرا چون روح متعالی داره و همون مبدع و منشهش تأثی کرده یعنی چی؟ یعنی اگر بحث جسم و جسد و بدنش شیعتنا خلق و منفاضل تینتنا فروه کافی جلدهش کتاب روزه اگر بحث روان و روح روح یعنی روان پوش جسم سیاد و نور اگر بحث خلقت روان و روح و نور مؤمنین و مؤمناته. شیعتنا خلقو من شعائه نورنا بفهمم بازگشته به اصلت کردی یعنی فطرت توحیدیت که تغییر ناپذیره اونو فعال نگه داشتی نه زیر قفلت یا جهل بماند و هم بیدار نگه داشتی. برگشتی به اصل وجودیت که اصل پاک طاهر طیبه چون میخواهی در دنیا و آخرت با طیبین طاهرین که معصومینند محشور بشی پس اینجا من توازع قلبه لله لم یسعن بدنه من طاعت الله هم. هرکس قلبش برای خدا تواضع داشته باشه بدنش از طاعت خدا خسته نمیشه چون مرید به مراد رسیدم عرفانشیه میخوام. چون مرید به مراد رسیدم لذا رجب حافظ البرسی در کتاب مشارق و انوار اليقین فی اسرار امیر المومنین علی علیه السلام اونجا این روایت رو آورده که شیعتنا و خلقو منفازل تینتنا یا تو بحث صفات مومنین شیخ کلینی در اصول کافی جلد دو صفاتی از مؤمنین رو بیان داشته یا علامه مجلسی در دو جلد از بهار کتاب ال ایمان صفاتی از مؤمن و رو بیان کرده اللهم علی محمد